سلیمان ماست اونیه. هفتم جمادی الاولی 642 هر چه باقی مانده بود لا جرعه سر کشیدم و طرفهای نیمه شب از میخانه بیرون آمدم. خریستوس تا دم در همراهیم هم کرد. موقع خداحافظی هم مرتب می گفت آهای سلیمان، مبادا حرفهایم را فراموش بکنی. جلوی زبانت را بگیر. سرم را تکان دادم. حرفهایش شنگولم کرده بود. خوب است آدم دوستی دلسوز داشته باشد. خودم را خوشبخت حساب کردم. اما همین که به کوچه تاریک پا گذاشتم، احساس کردم در عمرم هیچ وقت اینقدر خسته نشده بودم. کاش کوزهی شراب با خود داشتم. همانطور که توی کوچه راه میرفتم و و چارقهایم تختخت صدا میداد یاد مولانا افتادم و حیاهویی که موقع گذشتنش از کوچه به راه افتاده بود. سرزنش های طرفداران واعز بزرگ حالم را بد کرده بود. حوصله ام را سر برده بود. اصلا مرا نمی شناختند فقط چون توی میخانه بودم آنطور کلفت بارم کرده بودند. چیزی که توی این دنیا خیلی حوصل را سر میبرد آدمهاییند که فکر میکنند خیلی حالیشان است. مگر ما را توی گور همدیگر میگذارند که اینطور مثل گندم برشته بالا و پایین می پرند. تا این سن هرچه کشیده ام از دست آدمهای باعفت با افت کشیدم. اینجور آدمها از بس عذابم داده اند. همین که یادشان می افتم، موهای تنم سیخ می شود. توی همین فکرها بودم که از سر گذر گذشتم و رفتم توی کوچه کناری. درخت های گت و گنده که دو طرف کوچه ردیف شده بودند این کوچه را از کوچه قبلی هم تاریکتر می‌کردند. انگار همین کافی نبود چون یک دفعه ماه پشت ابر رفت و همه جا شد ظلمات. اگر اینجوری نمیشد از قبل ملتفت دوتا گزمی می شدم که داشتن نزدیک می شدم. تا دیدمشان گفتم سلام علیکم اما گزمه جواب سلامم را ندادند. به جایش پرسیدند، این موقع شب توی کوچه چه کار دارم؟ من گفتم، هیچ کاری، داشتم میرفتم خانه. روبروی هم ایستادیم، سکوتی سرد بینمان حاکم شد. اگر صدای پارس سکها از دور نمی آمد، سکوت مطلق بود. همان موقع یکی از گزمه ها کمی جلو آمد و هوا را بو کشید. با حالتی اقراغامیز و مسخره کنان گفت "آه آه، چه بوی گندی می آید. آن یکی فورا ادامه حرفش را گرفت. پس چی بوی گند شراب می دهد؟ تصمیم گرفتم کار را به مسخر بازی بکشانم. گفتم اصلا نگران نباشید این بو واقعی نیست حالا که می راست راستکی نجس است و فقط می مجازی مباه شده لابد این بو هم مجازی است گزمه جوانتر که انگار از این جواب اصلا خوشش نیامده بود فریاد زد ای مل اون این چرتوپرت ها چیست که میگویی؟ درست همان موقع سرکله ماه از میان عبرها پیدا شد و با نورش همه من را شست. دیگر می توانستم گزمه را که مقابلم ایستاده بود راحتتر ببینم. صورتی گوشتالود، چانه ای تیز چشمانی به رنگ آبی یخی و دماغی عقابی داشت. اگر یک چشمش نمی پرید، و آن اخم دائم توی صورتش نبود میشد گفت مرد خوش‌سیما است گزمه دوباره پرسید این موقع شب توی کوچه ها چه غلطی میکنی؟ از کجا می آیی به کجا می‌روی مثل توتی تکرار کردم از کجا می آییم به کجا می‌رویم فرزند اینها سوال های عمیقی است اگر جوابش را میدانستم، شاید جزو علما می‌شدم. گزمه ابرو در هم کشید. سر به سرم می گذاری مردک احمق؟ من هنوز درست و حسابی نفهمیده بودم چه شده که یک دفعه شلاقی به دست گرفت و در هوا تکان داد. شلاق در هوا شترق صدا داد. غیر ارادی خندیدم معلوم بود دنبال جایی برای قلچماق بازی می‌گردد انگار داشت بازی میکرد. حرکتهایش خیلی اغراق‌آمیز بود اما یک باره ضربه شلاقی به سینه‌ام خورد و لرزیدم ضربه چنان غیرمنتظره بود که تعادلم را از دست دادم و روی زمین افتادم گسمه جوان گفت کسی که با حرف آدم نشود لیاقتش همین است شلاق را به دست دیگرش داد شراب خوردن گناه است مگر نمیدانی. حس کردم مایعی ولرم و شور توی دهانم جمع شده فهمیدم دارم خون خودم را مزه مزه میکنم برای اینکه اوزا خرابتر نشود باید در دهانم را میبستم اما غرورم اجازه نمیداد از جوانی هم سن و سال پسرم کتک بخورم و دم نزنم گفتم اگر آدم مثل تو به بهشت می روند همان بهتر که من نیایم شرابم را میخورم پای گناهم هم هم می نشینم. گزمه جوان دهانش را باز کرد و هرچه لایق خودش بود نسار من کرد. بعد هم شروع کرد به شلاق زدن. دستم را سپر صورتم کردم اما فایده ای نداشت. با هر زربه که فرود می آمد فریادی خفه از دهانم در می آمد. اما یک دفعه ترانهی شاد به ذهنم آمد. شروع کردم به زمزمه کردن. امان یارم، جانم یارم، جانم به قربانت. تو میی منم پیاله، پر کن، جانم به قربانت. هرچقدر بیشتر می عصبانیت گزمه بیشتر می شد. و ضرب شلاق هم قوی تر از ترس جانم من هم رفته رفته بلندتر تر می خاندم. در دور باتل گیر افتاده بودیم من که داد می زدم، او فحش می داد. او که فحش می داد، من داد می زدم. فکر کردم دستش خسته می اما خسته نشد عجیب است پس آدمی زاد ممکن است اینقدر کینهی باشد آخر سر صدایم گرفت لحظه انگار شعاع نوری از جلو چشمم گذشت و بعد یک دفعه همه چیز سیاه شد صدای گزمه دیگر را به فهمی نفهمی شنیدم می گفت بی برست بس است، ولش کن مرد های شلاق ناگهان قطع شد. خواستم چیزی بگویم. گمان می کردم حرف آخر را من میزنم. اما خونی که توی دهنم جمع شده بود نگذاشت حرف بزنم. حال تهوع پیدا کردم. روی هایم استفراغ کردم. بیبرس گفت: حال روزش را ببین. حیف آدمی مثل تو نیست. رسما در وضعیتی هستی که باید برایت دل سوزاند. اما تقصیر خودت بود. تنات میخواید. کارشان با من تمام شده بود. پشتشان را به من کردند. صدای پایشان را شنیدم که دور میشود. نمیدانم چه مدت همانجا خوابیدم. شاید ده دقیقه. شاید ساعتها زمان مثل پرده مه نازک شد ماه در آسمان انگار نخواهد مرا در این وضعیت ببیند دوباره پشت عبرها پنهان شد ذهنم، بدنم، جایی میان مرگ و زندگی شناور بود یک دفعه بیهسی که همه جایم را گرفته بود از میان رفت همه بریدگی های روی بدنم زغزغ می کرد. مثل حیوانی زخمی شده بودم. نالهکنان همانجا ماندم. مدتی بعد صدای پا شنیدم. کسی داشت نزدیک می‌شد. اولش خیلی ترسیدم. گفتم شاید دوست باشد. اما بعدش خندم گرفت. بعد از آن همه کتکی که از گزمه ها خورده بودم، حالا باید از دوست ها می ترسیدم. از میان سایه ها درویشی قد بلند و لاغر بیرون آمد. نزدیک شد. سلام کرد. کمکم کرد بلند شوم. خودش را معرفی کرد. گفت اسمش شمس تپریزی است. اسمم را پرسید. گفتم سلیمان مست قونیوی با افتخار آماده اجرای اوامرتان است. شرفیاب شدم. شمس شروع کرد به پاک کردن خونهای روی صورتم. زیر لب گفت زخمی هم باتنن هم ظاهرن. هم از درون هم از بیرون. از جیب جُبهش شیشه‌ای بلوری درآورد گفت این مرهم را روی هایت بگذار ذاتی مبارک در بغداد هدیه داده بود پس قسمت تو بوده زخم درونت تر از زخم بیرونت است من منکنان گفتم تشکر می کنم. مهربانیش تحت تأثیرم قرار داده بود مردی که شلاقم زد گفت امثال من روی زمین زیادی هند. اینها را که می میگفتم صدایم میلرسید بغز راه گلویم را گرفته بود از ضعیف بودنم خجالت کشیدم شمس گفت حرف اشتباهی زده وجود همه تک به تک ضروری است و غیر قابل چشم پوشی. چیزی تصادفی یا اضافی وجود ندارد. این یکی از قوائد است. پرسیدم از کدام قوائد حرف میزند؟ گفت قاعده بیست و یکم. به هر کدام ما صفاتی جداگانه عطا شده است. اگر خدا میخواست همه عیناً مثل هم باشند بدون شک همه را مثل هم میآفرید. محترم نشمردن اختلاف و تحمیل عقاید صحیح خود به دیگران بی احترامی است نسبت به نظام مقدس خدا. به سختی گفتم حرفهایت قشنگ است اما من به همه چیز شک دارم حتی به خدا شمس تبریزی لبخند زد گفت شک کردن چیز بدی نیست اگر شک بکنی یعنی اینکه که زنده ای در جستجوی انگار که از روی کتاب بخاند با لحنی جاندار ادامه داد انسان یک شبه صاحب ایمان نمی شود سلیمان آدم خودش را مؤمن می داند. اما یک دفعه حادثه غیر ای پیش میآید، دچار شک می شود، تردید میکند، دوباره خودش را جمع و جور می کند. ایمانش قوی می شود. پشت سرش دوباره به پرتگاه شک سقوط میکند. این وضع همین جور ادامه پیدا میکند تا به مرحله مشخصی نرسیده این، یک بار به این طرف تاب میخوریم، یکبار یک بار به آن طرف. گاه مؤمنیم، گاه منکر، گاه در تردید. گاه اهل بهشتیم، گاه اهل جهنم. فقط این طوری می توانیم پیش برویم. در هر قدم کمی به حق نزدیکتر می شویم. بدون احساس شک نمی توان صاحب ایمان شد. گفتم اگر مسیحوس این حرف هایت را بشنود نگران می شود به خدا پشت سر هم بهت میگوید مواظب حرف زدنت باش مدام به من نصیحت میکند و میگوید هر کلامی با هر گوشی سازگار نیست شمس تبریزی خندید و گفت خب او هم حق دارد بعد یک دفعه از جایش پا شد یالا بیا تا خانه برسانمت. زخمهایت را می بندم. بعدش هم باید بخوابی و استراحت کنی یک دستم را دور گردنش انداخت و کمک کرد سرپا بیستم اما در وضعیتی نبودم که بتوانم راه بروم درویش این را که دید بدون معطلی کولم کرد. بوی خودم به دماغم خورد. خجالت کشیدم. گفتم مرا کول نگیر. بوی گند میدهم. گفت نگران نباش. تو فقط راه خانه را نشانم بده. این شد که شمس تبریزی بیان که به خون و ادرار و استفراغ روی لباسهایم اهمیتی بدهد در کوچه تنگ و که قونیه مرا کول گرفت و برد از کنار خانهها دکانها ها گذشتیم همه در خوابی عمیق بودند انگار سکها از پشت دیوارهای باغ وق زدند گفتم چیزی هست که همیشه میخواستم بدانم میی که صوفی ها متحش می کنند می واقعی است یا مجازی شمس انگار که با بچه ای حرف بزند لبخند زنان گفت ای وای سلیمان این را میخواهی بدانی چه فرقی میکند سرانجام به در خانهمان رسیده بودیم با احتیاط زمینم گذاشت بعد اینطور گفت قاعده بیست دوم آشق حقیقی خدا وارد میخانه که بشود آنجا برایش نمازخانه خانه میشود اما آدم دائم الخمر وارد نماز خانه هم که بشود آنجا برایش میخانه میشود در این دنیا هر کاری که بکنیم مهم نیتمان است نه صورتمان پس از آنکه شمس به خانه رساندم در صبح شبی دراز و خسته کننده دمر روی تشکم خوابیدم با آنکه درد زخم ها نمیگذاشت بخوابم اما جایی در درونم نوعی آرامش نوعی تسلیم جا خوش کرده بود همه جایم درد میکرد. اما قسمت عجیب ماجرا این بود که دیگر جانم آنقدرها نمی سود